بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والد طاهرین الحمد لله الذي ادعو فيجيبني فان كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي اساله فيعطيني وان كنت بخيلا حين يستغرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي و اخلو بهی حیث و شعط لسر ری به غیر شفی لی حاجتی با عرض سلام و احترام خدمت شما سروران گرامی امیدوارم که تاعت عبادات همه شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد از همه شما تو این ماه سراسر نورانی التماس دعا داریم ما توی دعاهای خودتون بویژه، شبهای سراسر نورانی قدر فراموش نکنید اگر خاطر مبارکتون باشد ما مبحث خلود را که مطرح می کردیم آیات را که بیان کردیم بعد از اون که اقوال متکلمان رو گفتیم و عدله قائلان و عدم خلود رو بیان کردیم و گفتیم که آن چیزی که در واقع قائلان و عدم خلود بیان می بیشتر در واقع زم... شما وقتی نگاه می کنید بحث زمینه هست، دلیل نیست، بس, ل... بس اصل و قاعده مطرح می باشد نه اینکه ما بگیم این آیات در حقیقت صرفا از اونها می شود دلیل را گرفت ما نمی به صورت قطعی بنابراین به این آیات استناد کنیم پیرامونه بعد از اون ادله عقلی رو بیان کردیم که گفتیم این مسلحت رو ما نمیدونیم که در واقع این که خدمت شما عرض به این عذاب شخص کافر و شخص عذاب مؤمن در واقع فاسق اینها تو یک مرتبه باشن گفتیم که یک سان, انگار، یک سان انگاری میگن خلاف عقل ما گفتیم آقا چه بسا این افراد در واقع وارد دوزخ شوند اما از جهت کیفیت در واقع خلود اونها در واقع با هم تفاوت داشته باشند پس ما نمیتونیم با قطعیت مطالب رو مطرح کنیم عدله قائلان به خلود در دوزخ رو گفتیم که ما 16 تا آیه رو اینا استناد میکنن که میتوان در واقع چار مورد نخست یعنی بحث کافران و مشکان و منافقان و مرتدان رو در شما رو در واقع کافران اینا رو یک در واقع یک جا بیاریم بقیه ای آیاتی که استناد شده است رو حالا ما باید بپردازیم ببینم مواردی که اشاره شده چون قائلان به خلود توی دوزخ که در واقع معتظل هستن که ما بیان کردیم و برخی از دالا بعضی از بودن که بیشتر معتظل ما مرادمون بود آن چیزی که بیان شد ما میخواییم بگیم اقا این آیاتی که شما استناد میکنید این آیات رو باید در شماره کفار بدانیم. طبیعتا اینها در واقع مؤمنان مرتکب, مرتکب گناه کبیره نیستن چون اونها نجات پیدا میکنن در نهایت. خب ما اگر یادتون باشه شش دست از آیات که بیان شد رسیدیم آیه آیات در واقع مرد هفتم که بحث فرو در خطا هست که در قرآن کریم آمده است که بلا من کسب سییعتن و احاطت بهی خطیعتهو فا اولا کس هاب و نار اونفی ها خالدون بابین یک آیه هست که شما مشاهده می کنید که در واقع بهش استناد می کنند ببینید شما گرین این آیه هشتاده سوره بقره را بخواید محل توجه قرار دهید طبق صحبتی که خدمت شما عرض شود قائلان به خلود مطرح می کنن. اینه که اولا در این آیه آن چیزی که بیان شده است خدمت شما عرض شود باید توجه کنیم که خلود در آتش رو مطرح شده که شما ویژگی ها را باید اینجا ببینید اولا باید ما سیاق آیات رو در نظر بگیریم ببینید سیاق آیات خدمت شما عرض شد که افرادی که مخلد در آتش هستند بیان شده که باید داره دو دوتا خصوصیت باشند یکی مرتکب گناه شوند و دیگر اون که به قدری توی در واقع ارتکاب گناشون اصرار ببرزند که خطا بر اونها احاطه شود ببینید این تعبیر رو ما باید دقت کنیم و این واژگانی که اینجا اومده ببینید ما آیات پیشین رو وقتی می‌ریم نگاه میکنیم خدمت شما عرشبت که بحث شما الان آیه هشتادوم سوری بقره رو مشاهده می‌کنید، اون پندار خطای در واقع بلند پروازی ها و ادعاهای توخالی یهود را داره میگه و قالولن سن نارو الا ایامن معدوده و اتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون در واقع که اونا داشتن این میگفتن که هرگز آتش دوزخ رو جز چند روزی به اونها نخواهد رسید این در واقع برتری نژادی ملت یهود حالا ما نمیگیم منظورمون اون مرتکبان گناه هستا اون مرتکبان گناه اونها رو میرسونه که این امتیاز طلبی رو در واقع برای خودشون لحاظ میکردن اینجا شما وقتی میرید نگاه میکنید خداوند این بحث مجازات کلی که اینجا مطرح میکنه ها این پنار باطل رو میخواه ابتال کنه. میگه آقا حال شما در واقع از شما از دو حال خارج نیستید یا باید عهد و پیمان خاصی از خدا تو این زمینه گرفته باشید که شما نگرفتید و طبیعتا دروغ و تهمت به خدا میبندید بعد بیان میکنه در واقع کسانی که گناه کردند تحصیل گناه کردن و آثار خدمت شما ارج شود که گناه سراسر وجودشون رو بپوشاند اونها اهل دوزخ هستن و همیشه در اون خواهند موند پس ببینید شما نکته‌ای که وجود دارد باید به این توجه کنید بحث احاطه خطا اینجا مطرح شده احاطت به خطیعت و احاطه خطا رو شما دقت کنید احاتی خطا در واقع اون حالت نفسانیه که از گناه برمیخیزه یعنی شما میبینید که تمام وجود شخص میشود گناه یعنی یک جورای شخص به در واقع به سنت ازلال در واقع گرفتار میشود یعنی بعد از اون که گمراه شد خداوند دیگه چه اون رو به گمراهی میافکند. تمام چراغ های هدایت بر روی او در واقع بسته میشه و اینجا دیگه سخن و راهنمود پیامبران و منادیان الهی در روی هیچ اثری نمیگذره خب طبیعتاً اگه دقت کنیم اولا گفتم این در مورد علایت الاسوبانی اشاره نکرده این اون سیاق پیشین را اما اینه که مقصود کفار بنی اسرائیلن که ایشون اینا میگن یعنی شما بینید بحث کفار بنی اسرائیل هست که در واقع در این اعمال زشتشون در واقع چی شدن فرو رفتن ارتداد و تکذیب آیات الهی و اینها سمره در حقیقت چنین گناهی هست که بعد شما نقطه مقابلش رو می‌بینید ولزین آمن و عمل و صالحات اولایی که از خواب الجنه هون فیا خالدون جالبه دقیقا تو آیه 82 شما می‌بینید این مقابله هست یعنی اگر شما از مقابله ولدین آمنو به مفهوم و خالف میشود مراد کیا هستند اینا که بلا من کسی سیه اونا ولدین کفرو هستند دیگه طبیعتا کافران هستند یعنی شما این مقابله را دقیقا میتوانید مشاهده کنید که ما رو به اینجا میرسونم ببینید کسب و اکتساب به معنی تحصیل کردن چیزی از روی اراده و اختیاره من توی پرانتز میگم اشاره به کسانی در واقع داره که با علم و اختیار مرتکب گناه میشند در واقع این آیه شاید یه تلنگوری هست که واسه کسب که گناهکار تو توی یک محاسبه یک بینانه داره در واقع گناه را به سود خودش داره انجام میده و احساس میکنه که اگر اون را ترک کنه به زیان خودش هست اینجور افراد سمرشون میشه که آخرت آخرت رو به زندگی دنیا در واقع میفروشند و چرا در واقع تخفیف در مجازات نیست؟ به این خاطر که اینا احساس میکنن برنده هستند نه بازنده. این نکته رو به اشتقت کنیم. این بحث خطیه‌ای هم که اینجا اومده نکته‌ای که شما وقتی میرید توی تفسیر فخر رازی میبینید بحث گناه کبیره یا آثار گناه هست که بر قلب و جان انسان می نشیند. همین بسی که بهتون گفتم دیگه احاطه شوبت شما گناه کوچک و بزرگ در آغاز یه عمل هست و تبدیل به حالت میشه طبیعتا با اصرار تبدیل به ملکه میشود و فراتر از اونها وقتی به اوج رسید این میشود این وجود انسان ببینید احاطره دقت کنید یعنی انگار گناه شده این وجود اونها احاطت بهی خطیعتو یعنی میشود عین وجود اون دیگه ببینید اگر یک زمان شما این عمل در واقع گاهی اوقات شما تغییر بدید دیگه بس تبدیل عمل دیگه این اگر شد حالت باز میشه تغییر داد ملکه شد دشوار بعد دیگه میشه وجود دیگه بسیار سخت میشود خب اینم پس دقت کنیم اینم اینجا باز بر نمیگرده به مؤمنان مرتکب گناه ما این رو به معتزله گناه پاسخ میدهیم که الان شما میخواهید بگید که خدمت شما هر شبد مرتکبان گناه از مؤمنان گناهکارم وارد جهنم میشوند خالدانه ما میگیم خیر چوننا گفته بودن که اگر توبه کردن برگشتن قبل از مرگ که فبل مراد اما اگر توبه نکردن از دنیا رفتن اینا دیگه در واقع جاودانه در دوزه خواهند بود خب اینم در واقع مورد هفتم مورد هشتمی که بیان کردند بس افراد گناهکار هست که آیات 68 و نهم سوره مبارکه فرقان را در واقعشون مطرح میکند که میفرماید که والذین لا اون ما الله اله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من يفعل ذلکه یلق عثاما یضاعف له الاذاب یوم القيامه و یخلد فيه مهانا این در واقع داره میگه افرادی که یه معبود دیگه رو در واقع معبود دیگه رو با خدا نمیخونن و انسانی را که خدا در واقع خونش را حرام شمرده جز به حق نمیکشن زنا نمی کنن و هر چنین کند مجازات سختی خواهد داشت عذاب اف شخصی که مرتکب اینها بشه تو قیامت مضاعف میشه و همیشه با خاری در اون خواهد بود ببینید اینجا شما وقتی مشاهده میکنید خداوند داره این ویژگی های عباد و رحمان رو, رو, رو میگه این ویژگی عباد و رحمان رو شما وقتی میرید نگاه میکنید اول آیین رو میگه این میگه که آقا اینها مرتکب شرک نمیشند در واقع اینها میبینید توحید خالصانه دارند. سراسر وجودشون رو در واقع نور توحید در واقع فرا گرفته است این صفت طبیعتا وقتی صفت موجب می شود که از آلودگی به خون بیگناهان در واقع پرهیز کنند و طبیعتا دامانشون از افت در واقع پاک جز آلوده نباشد دامان افتشون همیشه پاک باشد ولا یزنون این ویژگی هایی که اینجا مطرح شد بعدش هم تو این دراهی و دگانهی کفر و ایمان ایمان رو انتخاب می حالا ببینید در پایان تأکید میکنه هر که یکی از این امور را انجام بده عقوبت و, و مجازاتش رو خواهد دید و من و من يفعل ذلك يلقى عصام حالا این اسم و اسام در واقع اعمالی هست که انسان را از رسیدن به ثواب دور میکنه به هر گونه گناه اطلاق میشه که اینجا به معنای خدمت شما ارباب جزای گناه است حالا بعضی از مفسرها مثلا فخر رازی میگه اینجا واسه کیفر گناه هست و موارد دیگه یه هر که حالا اینجا مطرح شده خب این خدمت شما عرصبت نکته که اینجا اومد حالا ببینید ست تا گناه مطرح شده ببینید اینجا آیت الله سبحانه میگه مشاران اله زالکه رو که شما مشاهده میکنید بیم خلود در عذاب داده شده باید ببینیم که زالکه به چه نکته اشاره میکنه که در ابتدا اصلا عمل نکوهیده رو در واقع که افراد مومن اون رو ترک میکنن برشمارده بحث شرک و قتل نفس محترم و زنا هست خب حالا ببینید پس شما این, این سه گناه نهایت اهمیت رو دیگه خداوند میخواد این اهمیت رو بیان کند دیگه وقتی خدا داره میگه که تأکید داره میکنه دیگه بحث عذاب مزاعف رو میگه حالا چرا عذاب اینگونه اشخاص مضاعف میشه؟ چرا به اندازه گناهانشون در واقع مجازات نمیشن آیا این با اصل ادالت،, ادالت در تناقض نیست و نکته چی هست تنها وقتی ما نگاه میکنیم گناه اول موجبه در واقع گناه اول کفر دیگه شرک قتل نفس و زنا آیا اینها سبب خلود میشود یا خیر این سوالات رو ما با دقت کنیم این وسط شما وقتی بره تو تفاصیل مطلب زیاده ایشون باز اینجا اشاره میکنه تو صفیه 396 هم. که در واقع عذاب مضاعف برای شخص زناکار در واقع ما بگیم مضاعف بودن عذاب و چی نداره بعد خدمت شما هر شود که باز مطلب دیگه مطرح میشود احتمال دومی که باز ایشون گفته اینه که ما بگیم بحث شرک و قتل قاتل, قاتل نقص محترم هست مورد خدمت شما ارشادات ایشون باز این میگه که قرغ صحیح نیست که در واقع گویان سه مطلب رو بگه بعد سپس بدون قرینه تنها به اولی دومی اشاره کنه طبیعتا میشه همه اعمال نکویده یعنی هر ستایی که بیان شده اه یعنی همه اعمال نکویده را در بر میگیره حالا یه بحثی که وجود دارد به دو تا قرینه ما میتونیم بگیم می که حکم از آن گروهی هست که ست رفتار نکویده را داشتن یکی بحث مضاعف بودن عذاب هست دوم استثنایی است که بعد از حکم به خلود اومده شما اون استثنا رو حتما بهش توجه کنید میفرماید که بعد از اون استثنائی دیگه کنشوا مینن میفرماد و لذین الله یادونم الله لاهن آخر و لا یقتلون نفس اللتی حرمت الله ایلا بالحق و لا یزنون و من یفعل دالکه یلغه اسامه ک محکومین به خلود تو عذاب که در محکومین به خلود در اذاب فاقد ایمان و عمل ساله هستند. انشا این توجه کنید آقا شرک به تنهایی کافي در خلود هست این اصلا يه تردیدی نیست. یعنی شک ما تو این نداریم حالا وقتی دو تا عمل سیعی دیگه، دو تا عمل در واقع پلید دیگه مثل قتل نفس محترم و زنا رو در واقع شما به اون نگاه میکنید ایشون میگه دیگر نیازی به انزمام دو عمل دیگه نداره ولی پاسخ روشنه زیرا انزمام این دو مایی مزاقف فودن گناه هست نه خلوده در آتش ببینید یعنی شما توجه کنید نه آن چیزی که مطرح می شود شرک آن چیزی که ما میگیم شرک موجب خلود میشه حالا شرک به اضافه قتل نفس محترم و زنا در واقع چی هست اون دو مورد یعنی قتل نفس محترم و زنا موجب مزادفودن هست یعنی شما یه خلود مشاهده میکنه یه مزادفودن عذاب رو مشاهده میکنید ما الان به اینا اینجور پاسخ میدیم میگیم آقای خطاب این آیه که شما بیان کردید معلومه این دیگه در مورد کفاره کافرانی که در حقیقت دو تا ویژگی دیگه هم دارن عذابشون در واقع گناهشون مزعف هستیه قتل نفس محترم میکنند و در واقع زنا میکنند این دو مورد اینجا مطرح شده است این وسط های خواستید برید توی تفسیر ها برید نگاه کنید اینا مطلب زیاد اینجا اومده ها مفسر ها کلی بحث کردن حالا بعضیا ها گفتن آقا مجازات تک تک این گناه ها مجازات چون ای داره مجموعشون میشه عذاب مزعف بعد بعضی ها میگن که گاهی یه گناه سرچشمه گناهان دیگه میشه کفر سبب ترک واجبات و انجام محرمات میشود و این خودش موجب مزعف شدن مجازات میشه بعضی میگن آیه رو دلیل بر اصل معروفی گرفتن که کفار همانگونه که مکلف و اصول دین هستن به فروع دین هم مکلف هستند. حالا این خدمت شما عرض شبه نکته ها است خب در ادامه شما وقتی نگاه میکنید بس گفتم ایلا من تابه و عمل صالحن این دیگه عمر را بر ما روشن کند. و یکی از آیات امید بخش قرآن کریم که علامه حسن زاده میگن ارجاعی قرآن قران هسته امید بخشترین ترین آیه الا و آمنه و عمل الصالحان فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات کان الله غفور رحیم حالا میگه کسانی که توبه کنن و ایمان بیارن و عمل صالح انجام دهن خداوند گناهان اونها رو به حسنات تبدیل میکنه و خداوند همواره در واقع آموزنده و مهربان مهربان هست ببینید طبیعتا نکته ای که دیدیم ست گناه ذکر شد یعنی ما به اون باشه ست گناه ذکر شد حالا جایی که شما وقت نگاه میکنید در توبه بر روی این افراد باز گذاشته میشه دلیل نه که هر گناهکار پشیمانی میتونه به سوی خدا برگرده البته مشروط به اینه که توبه شقیقی باشه نشونه اونم عمل صالح هست که جبران کننده هست دیگه و یعنی نباید لغلغه زبان باشد دیگه اینجا هم شما برید نگاه کنید بحث تبدیل سیاد و حسنات مباس مفصلی اومده که ما نکته رو مشاهده میکنیم خب خدمت شما هر چه باید که اینم مواردی که تو این آیه اومد پس ما این آیه رو هم میگیم که آن چیزی که شما میگید مربوط به از متوجه می شمیم. اصل آیه اون خلوده برای کافران هست افرادی که در واقع شرک می نه نهومین موردی که بیان شده است خدمت شما شود، آیات صدام و صدایه سوره مبارکه ها هست که در این آیات شما وقتی مشاهده می خدمت شما شود. آمده است که البته آیت بعد آیت 99 تا صده کم هست که نغست علی که من انباع ما سبق و قد آتینا که من لدنا ذکرا میگه ما گونه بخش از اخبار پیشین را بر تو بازگو میکنیم و ما از نزد خود در واقع ذکر را یعنی منظور قرآنی به تو دادیم در, در ادامه میفرماید من اعرض انهو فا انهو یحمل و یوم القیامته وزرا هر کس هم از اون روی گردان بشه روز قیامت بار سنگینی از گناه و مسئولیت بر دوشش خواهد بود خالدی نفیه و سا اللهم یوم القیامت هملا در حالی که جاودانتون خواهد موند و بد باریس برای اونها توی روز قیامت آمینم آیه که اینجا اشاره شده است